by the جمعی که خدمتشون هستیم مدیران متابازات و معاونین مجموعی ما هستم جنابه های چاکرزی یعنی که معاونان و سهیت میدیده همون هستن دوستان هم که دیگر آلا معرفی کردنشون الان سخته برای شما به ذهن نمیمونه جنابه های چاکرزی و سهیت هستن جناب آقای گلشنی و جناب آقای برامندی که حضور ندارن هم صوریت مدیره هستند جناب آقای مقدس زاده بود کل مراثی جناب آقای مصطفی مودت کل اوتومניה جنابشان در دی ماوراء حمل و ترانزیت سرکوتون شهدت دی ماوراء طرنگیشون گردشگری اون هستن جناب آقای جناب آقای رئیس تدیدی حمید احمدی آقایان ابتدا صندوقش دوره بیشماران می و الان که سوالی شد و لما حید به من مدیر گفتم گفتم اونجاست انا دیگه نمی دانم چه خبرش بقیه از اون دوستانم که مدیران ما هستم من چون جلسش دیدم یه در واقع شورای مدیران تراجنم ویکتور دلم که معاون اقتصادی این برنامه داشته بود. منت. تبریک میام در واقع خدمت سرکار خانم شهرکی و جناب و درده ای که همین هفته در واقع مسئولیت تذیرستم تذیرستم به عنوان معاون توسن رو و در معامل فرنگ اجتماعی که خانشهره که اولین معاون در واقع زن در همین هفته بازار هستم خواهر سابقه نداشت یه بکر بیرد این هفته ما سبت کردیم درداریان باشیم بله بله ایشون نشکست ما شکست ما ایشون بردم بازدیشون رو دیگه خلاصه بکنم الان به من بگیم بیشون نگیم آیدیجو من میدونم شما که حال از ظهر وارد شدید بردر زیادی دو بازدید ها هم احتمالا از زیاد شدید خستم شدید ولی چون فردا و پس فردا بازدید های مفصلی دارید رو من فکر کردم شاید اگر یک معرفه عمومی از منطقه و برنامه های خیلی سریع انجام بشه. قرار در این بود که مدیران مفصل صحبت بکنن و گلاه ها و درده ها و مشکلات و مسائلشون رو در این روزهای سخت اقتصادی خدمت در روح نموهندگان مختلف محدث. خصوصا که کمیسیون اقتصادی هستید و ما خیلی با شما کار زیاد داریم. شما با ما کار دارید. ما کار ندارید. ما بچه خوبی هستیم. مسار رو مطرح بکنن. ما تا ما برا شما وقت بیشتری در باشید و حالا بخش عمده مسائل را هم خودتون در بازیتها ببینید فرنا رو بر این گذاشتیم که من یه گذرش مختصریت مختصریت رو خدمت شما ارائه بکنم و بعد در مبنای حالا موضوعات مختلفی که سلام می دونید و مسئله هست در موضوعات مختلف بروت بدعو هم همکاران ما هم پرداخت و پس پردا اختیزای موضوعاتشون خصوصا بروقع خیلی بهتر هست که بخشششاننده مسله مشکلات رو از زبان سراممایه گذاران و پایین اقتصادی به در نشستی که پردایش بینی شده و دوستان خودشون حضور دارن اونجا من فکر می‌کنم کنم بحث و گفت بیشتری در مسئله موضوعات بشیم بنابرایم توی جلسه امشب بنابرین داریم که صفا یک در واقع گزارشی از اقداماتی که انجام شده برنامه ها معوریت هایی که داریم و آنچه که در مورد چوابه ها می کنیم و خدمت شما را رایو کنیم و بیشتر استفاده کنیم من نقطه نظرات جناب یوهان و یو خدمت شما ارز کنم که اگر یه معرفی خیلی مختصر از چوابه من بخوام داشته باشم خدمت شما در واقع اون که ما از چوابه ها را در مورد صحبت میکنیم به عنوان منطقه آزاد محدوده است که در واقع حدود شهرستان چابال حدود 9739 کلومتر محدود است دویست و نوت هزار متر جمعیتش هست و 135 کیلومتر مرز خشکی داره منطقه آزاد توی این آقای سیفرین چرینج من هزیت میکنن و مکارمشون داره. خواهد محدوده منطقه روشون بده. این محدوده منطقه است. در 139، در 135، که مرز آبیه، ولی مرز رسمی آبیمون، بندر شهید کنندتری و شهید بهشتین از کلا، در این در واقع نقطه. شما اگر یکم سندگیشون رو به یکی مراهزه می کنید 82 هزار هکتار تحت طول منطقه آزادی هست این نقطه منفصل اینجا نقطه صفر مرزی ریندان هست بازاش یک مرزی ریندان که در واقع عنوان یک مرکز مبادلات با هم کشور افغانستان و کشور پاکستان بیشگی می شده و هم ما در اون نقطه فاصلمون با بندر قوادر تقریب هفتاد. 70 پیلنج. ما کل فاصل از منقع آزاد چاوار تا باید بوده دیمیست کیلومتر، هفتاد کیلومتر از اون نقطه فاصل دایی سلویستی از اینجا تا نقطه مرزی ریدان هسته. این تو تر توصیح به نظرم که از نقاط بسیار استراتژیک و مهمیست که میشند کار بسیار و کوستردی رو با هم کشور پاکستان به عنوان یک بازار حدود 20 میلیون نفری انجام داد و هم از اون طرف پروژه سی پیک که از چین دار میاد داده به قرار خط میشه به ما این فرصت رو میده که از در واقع فرصت‌های اونجا فراهم میشه بتونیم استفاده درست بکنیم انگیزه اصلیمون هم که سراق این رفتیم مراجعاتی بود سال 94 95 96 تا دوستان چینیک اومده بودن در بوادر مستقر شده بودن به ما داشتند و مسئله اصلیشون هم خدمت شما ارز بکنم که محدودیت انرژی و محدودیت زمین در بوادر هست یعنی اونا هم نیاز به انرژی دارن برای توصیل صناعیشون و هم زمین میدونید تو قانون مالکت پاکستان بگونه این هست که تقریبا همه احرازی مالکت خصوصی دارند. و تأمین زمین در اونجا برای چینی ها اونجای مسئله خیلی جدی است هلان کل زمین میتونستن در واقع با انواع نتقاض در اختیارشون قرار بدن که به اول کلشون اصلا این کار با کارباه همون میتونه باشه نقصه دکتاره و در تلاش هستن که حالا توسعه بدن برشون اصلاحش درمون تو مسئله جدی داره. روی صناعی انرژی برشون خیلی حتی دولوپر اونجا که در واقع شرکتی هست فرصت بسیار علاقمند بود که در واقع در در همین موقعیت دیدیم بیات ما بکنه ما از این مدل در واقع بود گرفتیم و اون محدوده رو پیشنهاد کردیم مضاف بر اون زیرساخت‌های سمت پاکستان در اون نقطه کامله یعنی جاده دسترسی بسیار خوبی می‌و در جریان داره و توسعه زیرساخت‌های مرزیشون رو هم به لحاظ بازرگانی و هم زیرساخت‌های عمومی که مورد نیاز بوده برای مقاالت مز رو این در کامل کردن نقطه مهمترش اینه که از این نقطه تا کراچی که مهمترین بنده بند پاکستان هست برود 6 سکییل فاسه دهیم مننا مفهومش اینه که ما در نقطه در منطقه آزاد چابه چابهار بر مربنای مقالات بازار اامان کار بکنیم اصلا نباید به بازار ایران بگاه بکنیم چون ما به تهران، به تهرانگان کانون توزیع طالیتتی در ایران، که بدون ده میگن جمعیت داره و تردن تمام صنعه بزرگ ما اطراف این شهر مستقبلا داده خیلیگ بود مسافت 2000 هزار که ما داریم توان رقاقت با اون فعالیت ها و صنعه رو ما اتشابه ها نمیتیم که دادا کنیم بنابراین برای تولید کردن برای توضیح در ایران بازار منطقی سیستان بروچستان یک بازار دومیلیون نقدریه که مقدر یک قیاسی برای تولید أما در تهران و در پر به کشور اگر بخونم برود پیدا این فاصله بسیار طولانی رو که کنیم بنابراین تا آن دقابت نخواهیم داشت و شاریک اصلی شکست پایی یک تولید برای در واقع سرزن نسلی باشه نهایی نگاهی که سالها در منطقه حاکم بوده ما در در افتر مطالعاتی که در منطقه انجام دادیم و راه هامون رو تدوین کردیم گفتم ما بازار هدفمون اصلا ایران نیست ما بازار پاکستان رو بکنیم و فعالیت‌های در ور معاملاتیمون هم با این کشور توسعه بدیم چرا چون ما ها از طریق دندان با فاصله از خود در ور بندر شهید ریسی تا اونجا حدود 600 کیلومتر مسیر به بندر کراچی که حدود با قومش و اطرافش حدود 20 میلیون نفر جمعیت داره و 20 میلیون نفر آدم رو داره اونجا در واقع تغزیه کنه بنابراین ورود به با اون بازار یعنی دسترسی به بازار دیست میلیون نفری. از سال در واقع 95 این موضوع رو ما دنبال کردیم الان خصوصا محصولاتی که اونها نیاز من انرژی این این بر و در واقع پایه نفت و گاز ما هم الان واحد های بلندیگ زیر داریم سادراتی خیلی خوبی به پاکستان دارن و محصولات دستی استیبل شو شمیت لاستیکی اما وارد کردیم که شیب در امکان و کل دماسطده رو به پاکستان صادر میکنند. از اون طرف هم اومدیم روی مواد دنبالی پاکستان برنامه زیک کردیم. ما بیست واحد فرودگاهی برایش داریم که مова دنبالیشون از پاکستان وارد میکنند. در هر تونی بین 600 تا دلار تحت جویی ارزیه و هر واحد دهنش تا 8 نفر و تا 10 نفر شغل داره. اگرچه که این بیستشو ندارم. متشکل از تقریبا در واقع قسادی ما. ولی با این مبانی ما سعی کردیم که جای اکوسیستمی رو در واقع ایجاد بکنیم و فکر کنم اتفاقات خوبی افتاده کار در نمیداره دردی من دوزیاد شکم خدمت شما خواهم. حضور شما ارزو کنم که رجب موقعیت چابهار در دنیا و دسترسیش به بنادر و جایگاری که ایران در این بخش از جهان داره نیازی به گفتن نیست شما به همین نقشه که نگاه میکنید میبینید, میبینید که ما نقش مرکزی و ها توضیحی رو میتونیم در منطقه داشته باشیم که این نقش رو امروز جبلدی داره در واقع در خریج پارس ام ام ام رفا میکنه و در ادامه اون هم در روبروی رو ما در چهار هار سوهار و دقوم با سرعت بسیار زیادی در حال توسعه هستن تو دومی منطقه آزاد هست که بیسش روی کانتینر گذاشته و یه بندر رو بزرگی رو توسعه داده دو تا صنعت بزرگ فولادی رو اونجا مستقل کرده و در چندین بندر سازی منطقه رو در انجام ده کشی هزار تنی از برزیل سن واهن میاره اونجا به بندر و صادر میکنه و این بندر با مدیریت و مشارکت هلندی‌ها روتردام هلند رو داره داره میشه بندر جدید یا منطقه آزاد جدیدی که از 2007 تقریبا شروع کردن بندر دوم هست در دقیقا این دهانه فوزه ای که ما وارد اقیانوس میشیم و این بندریه که تقریبا تمام نگاه کشور عمان به توسعه این منطقه آزاد خسروا 20000 هزار دلار ابتدایی هست که برایش تعهد کردن و همین الان بندر و جاجاک اونجا برای حوزه خدمات و پشتیبانی کشتی کردن و ایجاد کردن عمدتاً تو زیرساخت و زیردوره داره تا پورس صنعت و گفتگو و قناتی متصری و امور ایجاد کردن یه دونه شهر که پتروشیمی رو با سنگاپوریا توافق کردن تا مدیریت اینا منطقه آزاد، منطقه آزاد است که مدیرش آیلیه که سنگا پوری چینی میکسه. یک دونه شهرک سنتی جوینت سنگا پوری چینی اونجا عنوان دیولوپر دادن. در هزار هکتار فقط سایتشه که اینها بانوان دیولوپر اونجا دارن شروع میکنن. و در سمت راست ما هم گوادر هست که به حال رجب پروژه شخمان شنیدید. پروژه سی 46 میلیارد دلار گذاری از ق چین شروع شده و از شماره پاکستان وارد شده بخش های شده در حوزه زیر ساختی کجان جاده ای که, که می کنن در احاز میکنن و توسعه پیدا می‌کنه. اما در بادر هنوز تال تلویزیون ما هنوز خیلی عقب نیستیم ازشون به دوبار فری که ببینیم به زودی خیلی عقب میافتیم ولی بر حال اینهاست تا دقیق جدی ما در حوزه در اییاممان هستند و بادر. این در واقع ویژگی و برطری که ما نسبت به اومانی ها در این نقطه داریم اینه که پشت سر دوگم و سوهار به لحاظ خشکی سرزمین خشکی حدود چه میلیون نفر کشور اتحادی عربان جی سی سی باقر مستقردن اما خشتر ما و دسترسی در واقع بینه حدود 800 میلیون نفر آدم بنابراین هر دوی این ها نگاه دارن که یه جای ژایپای در 4-4 داشته نه اینکه بخوان نقش خواب و باراندازی رو عمل بکنن که البته ما در قبل از درس ما دلیل اینکه 96 مجموعه خیلی مفصلی با هر دوی مجموعه داشتیم باز دیدم کردیم مثلا کجا ما اینجا باز دیدم کردیم و معتقدند که ما برای اینکه بتونیم در واقع صحنه بازار رو دیدم مطالعاتشون کشونی کردیم محقق بکنیم حتما نیاز داریم که یک همکاری در پایداری رو با چابه ها شروع بکنیم خدمت شما ارز کنم که دیگر. یک مطالبی دیگه رو ما در بوضعی ترانسید و جاوه جنید بار بین مناطق و مخلق اقتصادی انجام دادیم حجم مبادداری در باقی سالیانه آسان با سی آریس قدود 12 میدیار دولار این هزار کانتینر که در واقع میشونه از مسیر چابه ها انجام بشه 19 میلیارد دلار مبادلاتشون با هم میده آقای سپیم با من هم بایده می کنم یعنی دو نفری چون دست می زنیم بهشان در واقع مجموعه دیگری که با هم مبادله خوبی دارن سارس هست با اتحاد اروپا و این مجموعه هم حدود 183 میلیارد دلار مبادلاتشون این حدود یک میلیون کانتینر ما اینا رو ممکنه خیلی از باراشون کانتینری نباشه ولی اینکه بتونیم یه مگاه سنجهی برسیم که اینا رو سمس بکنیم در واقع تبدیل به کانتینر کردیم این مجموعی کشورها که حتی عمدتاً جمال هند هست، اتفاقاتی که داره می افته. 16 میلیارد دلار هم باز این مجموعه با CIS داره مبادله می که باز هم هند، مهم قریز هدفش با CIS دنبال می کنه حدود 100 هزار کانتینر هست و GCC با CIS، یعنی اتحادی عرب با CIS حدود 8 ملیار دلار مبادله دارن 48 هزار کانتینر بعد شما از بکنند دیگه بیان با داشته ما یه ممیت خیلی مختصری در بوزه ترانزیت و همرو نظری مجموعه اون اتفاقاتی که ملاحظه کردیم رو اگر بخواید تبدیل بکنید یه سرجمی بازارهای هدفی که میتونه چابهار خصوص کار بکنه قدود سه و دوده میلیارد نفر یعنی 42 در جمعیت جهان میتونن از این طریق با هم وصفشن مبادل رو مدن. مجموع جی دی پی این کشور ها چلو چهار که بیون هست و ما اگر که فقط بخواییم بگیم سه درصد از مبادلات این کشور ها رو هدف گذاری بکنیم یعنی بگیم بالاخره نور مبادلات بیدن انجام میدن ما هدف گذاریم رو, رو روی سه دلار حجمی از این مبادلات هست که میتونه از طریق چابهار انجام بشه این 540 میلیارد دلاری که شاید بگیم بهترین مسیرشم عبور از است ما میگیم اصلا اینا رو ما فقط 30 درصدش رو تارگت بکنیم یا یک درصد سر جمع تجارت رو اگر صبر کنیم 162 میلیارد دلار در واقع حجم کالا و مبادله است که ما میتونیم از طریق چابهار اینها رو مدیریت کنیم بر اساس حالا نورهایی که وجود داره خیلی راه اگر بخواییم برابر تبدیلش بکنیم میشه سه دو میلیون سه دو میلیون کانتینر سالان بار و این سه ده میلیون کانتینر بار اگر بخواییم توی مسیر مسیر تراندود بکنه چیز حدود 6 میلیون شغل میتونه ایجاد بکنه در شهر با فرض این که ما از سه درصد سهم بازارهای هدفی که در موقع ما هستند از اون درصد فقط سی درصدش رو یعنی یک درصدش رو ما بتونیم جذب کنیم 6 و میلیون فرصتش شغلی در این مسیر ایجاد خواهد شد این یه ای خیلی ساده است برای اینکه ما بدونیم چقدر چواهار میتونه اهمیت داشته باشه چرا؟ هندی دیاب به دنبال هستند. چرا چینی تلاش می‌کنند که یه پای در چاوه داشته باشند و چرا امروز همه جای دنیا از اهمیت چاوه صحبت میشه اسلاحید بعدی رو میدهند داری زیادی ارتباطات چون فرض رو بر این گذاشتیم که مهمترین در ویژگی ما هم در نقل ترانسیت هستند من هستن هم بلکه مبانی شکلی منطقه آزادم بود استهزار داده که منطقه آزاد چاوار تنها منطقه است که اول مطالعه شده بلیجاد شده سند توسعه نگر شرقه شست که کار شده در اون سند تیشتیمی کردن دو تا معمولیت مهم برای شرق کشور در اون سند تیشتیمی شده یکی همراه نقل که و یکی تیزاره برای اینکه نظام رو فعال کنم گفتم ما یه انرژی در چابهار می‌خوایم و برای این انجین یک منطقه آزاد ایجاد بکنید که قبل از سال 72 اون طرحی که ما منطقه آزاد میاد در مجلس تصویب میشه تنها منطقه‌ای که مطالعه داشته ما با, با یک معقولیت مشخص در حوزه چابهار بده. در اولین مسئله ما راه‌های ارتباطی اون هست هم ارتباطات دریایی، ریلی، هوایی و جاده‌ای در حوزه ریلی اتفاقات خیلی خوبی می‌افتند در سال های اخیل ریل گوزاری از داهدگان به چابوهار شروع شده حقیقت آینده وزیر راد دارندی این چابوهار که ریل گوزاری از این هم شروع بشه یعنی طبیباً عبنیه و زیرساخت رو به اطمام هست مثل ریل هست و نایف کشبختانه با نایف کنها و سال گذشته داشتن آن زی ست میلیون یورو رو اجازه دارن سندوق بردارن پروژه تدرست هم محدود پروژه های فال کشور هست در, در حال حاضر مقر در حوزه دریایی دو سال پیش بندر برگرده رو هم بندر شهید بهشتی با ه میلیون میدونیم تون ظرفیت به بهره برداری رسید اگرچه که با همین زیر ساخت در واقع که فراهم شده با تجهیزات که میشه اضافه کرده یه سری حالا کارهایی که در توانه بچه های خودمون هم هست این امکان تا 20 ملیون تون هم قابل افزایش هست در همین فازی که الان به بحر برداره با نگونه تجهیزات به و یه مقدار توسعه هایی که امکان پذیر ام در موقع شدد شداره میتونیم افزایش رو ایجاب کرد سال گذشته حدود 4 چه... جان؟ در دومین قبل از توسعه ظرفیتش دومین بود که یه و هشت تمره می‌کردن بعد از اینکه ظرفیتش به هشت تونه رسید سال گذشته فقط چهار و خورده‌ای عمل کردن راه مارش رو برداشت مدیر بنده که رساند یاد بکنم امسال تا همین الان نسبت به سال گذشته جلو هست اصلا دانشوندی هست قبالی اصلی در از این برنامه وارد میشه در دو تا حوزه ضعف جدی داریم یکی بحث جاده‌ای هست که خوشبختانه مطالعات بند دوم جاده چاوبال به ظاهرا دانشجو شده در بعضی از متئاتم از ظاهرا شروع کردن اشراق رو به ظاهراش گسترمدن کار دارهش فعالن جاهای دیگه هم دارن اجرا میکنم مطالعهش وارد میشه الان این سال وزارت راه دستور کار کرده و این اگر دو خطه بشه به نظرم یه اتفاق بزرگی در حوزه چاتی خواهد افتاد در حوزه هوایی هم که دیگه مناقشه مهمی هست و تراشای خیلی زیادی رو در, در دو دهه گذشته نسبت از سازمان هوایی سال 80 من تو شروع کرده و خب حالا بنا بود که این سازمانیزاسیون ازش شروع کنیم ما امسال برای قرارداد EPC که با قرارداد با تست این حساب شروع کردیم برج 4 نیازه انشاء درآمد دویلپ شد برج 6 برج 6 و برج 6 شروع کرد. اون علاشد چک گرفت و تحویل شد در همون دو ماهی که کار کردیم سی درصد از سقف پروازی آماده کردیم اولان دنگاه میموز بازید داشتید از اونجای آخر فرداشت باند و تاکسیوی تقریباً زیرسازی داری اول دومشون تموم شده و ما به اساس بهمانه که با دوستان توافق کرده بودیم 15 من برار بود به تونتیزی یعنی لایه آخر باند رو شروع بکنید اتفاق مهم دیگری که در این سالها افتاده در سند جامعه لوجستیکی کشور چهار شهر لوجستیک پیش بینی شده بندر امام. و در راست و چابهار یعنی چابهار الان در مقیاس لوجستیکی به عنوان شهر لوجستیک در سند جامع لوجستیک تعریف شده و بعد برتری شهر لوجستیک چابهار نسبت به سایر در واقع شهرهای لجستیکی علاوه بر موقعیت استراتژیکی که ملاحظه کردیم ارتباطاتی هست که در واقع حمل نقل ترکیبی هست که در اینجا بر اساس اون جامعه و بر اساس ترین که ما داریم متعلقی کنیم فلاهم شده شما در منطقه آزاد چاوهار اگر که صاحب کالایی باشید و بخوایید که کالاتون رو جابجا جا کنید در لحظه میتونید تصمیم بگیرید که با یکی از چهار افیار همون نره پرگرسی کنید یا از بندر یا از سریل یا از سریل جاتبن یا از سریل که این مهمترین ویژگییی که چاوهار رو با همه رقبای خودش در منطقه متفابط میکنه و به همین دلیل بود که چینی ها سر فروضای چاوهار وارد قرارداد شدن با ما ما سال گزشته قرارداد در واقع EPCF با چینی ها برمزش 450 ملیون یورو هستیم این قرارداد تحیید دولت چین رو گرفته ساینش رو کرده و در واقع از نظر اونا قرارداد الان افرتیبه ان ما عقبیم چون ما با شورای اقتصاد رو می گرفتیم که هنوز موفق نشودیم و در لیست اون پروژه های در واقع همکاری استان ساله هم شهر پرودای چاوار هست نگاه ما در وضع پروژه های چاوار اصلا یک پرودای مسافری نیست یعنی اصلا ما نگاه به بخش مسافریش ندایم چون که اهمیت داره بخش در واقع بار cargo و مسافر خارجی هست یعنی ترمینال با هست که ماتون اینجا بود یک آمار دیگه رو اونجا خدمتتون arz بکنم تقریبا سالانه 86 میلیون تن بار 68 میلیون تن بار از طریق فرودگاه چابجا میشه در دنیا که 45 میلیون تنش بین شرق آسیا و اروپا جابجا میشه و این 60 45 میلیون تن به دلیل بعد مسافتی که یک در واقع در رو در محدوده ما دارم این در این تکاف رو الان دوه در دوهه و امره در ما را انجام میده در حالی که بر اساس مطالعاتی که انجام شده اگر که فرودگاهی در چاوهار شکلی گیره به دلیل اینکه که مسیح کلیدرهای پروازی که اگر مستقیم از چاوهار رو بر بکنن حدود چهل به زمان و حدود سی در سر از این برشون نرسول کرده میدهیم. ما در مسیر پروازی قرار میگیریم که فقط از هوا خود لرده. علاقه بر خدماتی که در فروتگاه میسونیم در موقع مای کار بودیم. فقط از هوای ایران شد وقتی در چهار توقف میکنم به دلیل این برکترین که دارم. از هوای ایران وقتی ارگرد محبت میکنم ما عددهایی که اصلا شاید با درامت نفتیم رو هم برابری بکنم میکنیم درامت داشته باشیم. می‌خوام به درعرض می‌کنم باز اطلاعاتی است که یه یک شرکت حمل و نقل هوایی پاکستانه که در دبی الان دفتر داره و داره کار می‌کنه. اومد اینجا بخوام من اجازه بدید یه مجوز پرواز بگیرید، در چابهار به او سی بدید، من ما رو خالصاین شما پرواز بدم، میام چابهار یه سوختگیری می‌کنم از شرق آسیا دارم میرم به اروپا و در توقفتی بکنم، هم بارهای شما رو رایگان حملی بکنم و هم صورت روی نیرین این, این, این خدمات هم دارم به شما می دارم من شدم ازش پشتم و دلیلش چه دقیقا همین می گونن توزه و امارات و دوره اینقدر دیگون شدن و اینقدر ترافیک دارن که ما اگر می میمونجا بلحاظ زمانی و ترافیک کرودداری اولا به ما اضافه نشستن نمیدن هزینهای کرودداریشون خیلی بالاست، ن و سخت که گوامد است و فگیرونیه و اگر با دیگر مسیر رو ایشون مواصله کرده 25 درصد تمام و در درصد از اینهای سوخت و ترماتور تر ارسونتریش راش. اینها ویژگی هایی هست که ها رو خیلی با اهمیت می‌کنه در ادبیات نقل و فرانسوی که تولد. جدیدی ادبیات تو درآمد ما شروع کردیم که توی این نیست با روسیه یعنی در واقع نوشتا رو کلیور شما به جنوب رو روزها تمام تلاششون رو متمرکز کردن که آسطراخان انزلی چابه ها بنده این رو را ببازن. و تو همین ادیام کلونا ما دوسته تا کنفرانس در مورد جلسات مجازی داشتیم با این دوستان و یک معمولی آزمایشین هم در مسیر مسیح کرده که باقای شو برم از آلشو دردیارن در کمیسی مشترگی ایران به روسیه این به عنوان یک موضوع مهم مطرح شده و در تاقومانه اومده یک تاقومانه مشترک بین من تحضر از شاهوهار انزلی از دارخان روسیه ما داریم و همینطور چون نمیدی ها دو طرف در واقع که کمیش مشترک روسیه و هند که ما هم موضوع داشتیم این رو به عنوان موضوع مهمی در تاقومانه شونا و داره کار میشه دوستاد اگر این مسیر رو راه بیندازن مسیر مطاربی کردن از باق در دنبرمی سی و هشت روز زمان از طریق شاواهی مسیح و این برایشون بسیار با اهمیت زنی که اون دریاییه، این ترکیبیه، این یه نقطه که امروز در و نقل خیلی مورد توجه هست، همرو نقل ترکیبیه. قبلا به دلیل اینکه وزن و نقل در قیمت ها خیلی من حضار نبود و تکنولوژی و نیدو انسانی و مسادمی بگیر اهمیت داشتن، خیلی به هم و نقل توجه نمیکرد ما تا امرووزه به قاابتتا اینقدر ن رو به هم نزدیک کرده که هم و نقل وزن قابل توجه دق کرده ب در تلاش به هستن که زمان و هزینه رو کاهش شدن یکی از پدیدههایی که توی یک دهه گذشته خیلی مورد توجه بوده هم و نقل یعنی شما از مدار و محسر با یک وسیله حرکت نکنید هم دریا هم خوشکگیره اما چیزهای زاره مختلفی که ممکن هست حرکت بکنید که زمان رو کوتاه کنید دیگه حالا توی منصف قرار دادی جنرالی استاد هستی بیدونید که در واقع که انجام میدن 15 روز 20 روز رو تصویر کردن قرار به بلحظه حزینه زمانی پول چهردنی چه خواهند شد بقیه مسئلهش کنمانه اینها یک تصویری از اهمیت چاوهار هست تا اتفاق دیگه هم با همین دور کرد و با علم به این فضایی دینون مدردی و این موقعیت جغرافیایی و این استراد برلوغه موقعیت استراتژیک ما اومدیم سری راه رو در منطقه برای خودمون ترسیم کردیم و یه نحشه هایی رو عنوان زیر دستی و خودمون مبنای عمل قرار دادیم و کارمون رو توی چند ساله با این نوانه پیش بردیم آه اقتصاد نمی رو بزنیم اولین و مهمترین مسئله‌ای که همیشه مورد سوال بوده و به درستی هم سوال شده خیلی هم ما پاسخی برش نداشتیم نقش ما در احتباس بنچیه واقعا ما در احتباس بنچی با کدوم سهم مال بر اساس معمولیتی که در این دوره مشخص شده سه تا معمولیت رو یا سه تا سهم رو ما در ملی بنچی وارد کل متصربریم هم فولاد آهن چشمی و در هم منظور روابط سه تا در واقع مجموعه ایی ای که دنبال با میکنید اینه که نقش ما رو در اقتصاد ملی و اثر ما رو در جی خواهد پی ده میلیون تن فولاد در طرح جامعه فولاد کشور در تابحال بیش می شده و 20 میلیون تن محصولات بتن از ده میلیون تنه فولاد یک مجموعه کوشش سازمان ملی رو این روز باز می که برحال، فقط بخش کوچکی از کنفرسور ها شده نوستنی تکلیبی است. اگر اونا برسه، برنامه از این برنامه از این برنامه به برداری برسه. اگر اون حلشه ممکنه کم بدرازه رو و یک کنسرسیوم دقنگی مطمئن هم در شابه تشکیل شده شده کردن در مرتبه مطالعات هستن که دوم اسپانی ها حالا در مطالعات انجام بده. این ان متشکل از فولاد مبارکه، چادرمندوب و گوله باهر هستیم. تقریباً چیز حدود 80 درصد فولاد کشور. و در حوزه پتروشیمی هم از اون 20 میلیون تنی که بالغد در هدف هدفگذاری شده، 8 حدود 6 میلیون تن تا 8 میلیون تن در 6 تا برنامه ریزی شده که دو تا پلتش الان در حال اجرا و همچنین امروز هم که لطفاً باثیت داشتیم مجموع شما متانول بدر شر در حال نصب تجهیزات در مهم. باز آزاد چاست که پروژه‌های هم پایپینگ رو شروع می‌کنن که تقو برنامه به نیمه هزار و 1400 بعداً به بهره برداری خارج شد. بدون نیروی کار رو هم اعطا در مرحله شروع کرده که مثلا برداشت رو تامین می‌کنه و در حوزه حمل و نقل ترانزیت هم دو تا موضوع رو ما دنبال بار کردیم که ارتباط بین به درا منطقه بود که منطقه شاوار تنها منطقه بود در دنیا که نفرس زمینی داشتند مرز دریایی داشتند مرز ناوبری این چه توه اقتصاال گذشته در مورد در مجلس به تص رسید هم بهنااد ش پوشت و شککن داخل داخلن انتقازار می بدان که مرز برگریه ما هم شد هم عرض خشکمون درقیدان برقرار شد و هم مرز هواییمون با این فر برای جدید هم ما تازه داریم اون موانی اولیه رسمهران من تاقاات رو سال گذشته میمون دادن که هنرووز باشم در ک عض و گرفته و مسین هنوز نتونستیم ازش بر برداری نه خیلی درمت آزاد نبوده اصلا ما تولید کننده داشتیم ما یه در چابه که در چابه تولید میکرد، کرد و دا می کنم سه نه حاجم انت آزاد نبوده نه حتی کلانترین 15 سایه هم فروده هم تر توسه چابه های دوتا ترونده بالای 15 سال <تصحكت> هم تا همین سال 94 و 93 هم دایه اومد تو مجلس و از سند برگشت. اختلافاتی بین وزارت راه و شورای منطقه‌ای معتبر در شورای منطقه‌ای منطقه آذربایجان منطقه منطقه منطقه داشت اینا انجام نمی‌شد. سال گذشته الان الحمدلله بخش عمدهش حل شد. گرفتاری به دلیل تاخیر در مصوبات هر می، مثلا در اعمال قانون جههای نکاتی داریم که الان مسئله متوجه سرمایه‌گذاران نیست. ما با خودمون مکلف مسائل داشته باشیم ولی سربازانم الان دیگه مشکلی ندارم و خلاف بندر رو میگیرم با طرفه ما یه بحثی داشتم اونها محترما اینجا زیرساخت تزیینه کردیم ضد قانون و آئینامه‌های های و قاضی اینا باید الان کامل تغییر ما باشه دوستان میگن اومید سر به گزاری کردین خوردش اینو پوری دولت من نه دولت شما دولتید ولی از اونجوری کار تفسیر بندر نمی‌کنه ما بندر نیستیم اشکال نداره شما کار رو انجام بدید تحت تحت مقررات ما و با نظارت روی یه تفاقنامه با هم تنظیم کردیم الان نظارته در محالات هملامترانسیتی ما روی بندر وجود داره و همون مقدراتی که ما با امار می کردیم گفتیم خطور امار بکنم در حضیرهی خودشون علام. موضوع دیگر ما اشخصاد محلی سایلکتور من جسارت می ولی شما می که هر کدوم ما توسعه برونوزایی رو بردیم مشکل اساسی رو با جوامع محلی همیشه داشتن و مردم محلی هیچ وقت احساس نکردن از این توسعه و از این کشایی صح نمیذارم در اهداف من از غازات هم به روند زبای رو نمیدارم توسعه و آبادنی منطقه رو نمیذارم های اصلی بحث رو ما محمدی گروه دو تا مجموعه یعنی دو تا راهبرد اساسی رو و خودم متمرکز شدیم که اقتصاد محلیه اومدی وقتی میبینی مردم چیکار میکنهmajority رقابت منطقه چیان تا روی و متوسطمون رو متمرکز بکنیم روی این ظرفیت ها که مردم محلی بیان وارد این حساب بشن بحث در واقع زنجیره های تبیل و ما شرکت صنعتی تخصصی رو بحث خوشه های مواد غذایی رو متمرکز شدیم روش اتفاقا بخش اون از تامین گذارها شامل خرد محلی هستن که حجم سفارشات گذاریشون سرمایه گذاری پایین نیست خیلی های نیستن نیروی کار میخوان را پیچی خودشون در خودشون ندارن و مردم رو راحت وارد این حوزه می‌کنند. در حوزه گردشگری هم شاید به عنوان یه صنعتی که واقعا در ایران محجور مونده و کارهای بزرگی رو میشه انجام داد درآمد‌های خوبی رو هم میشه کسب کرد کم کار شده بود اینا رو ما هدف گذاری کردیم در 20 سال گذشته در چاوها ما یک دونه هتلی پا رو داشتیم الان چیزه حدوداً 19 تا اقامتگاه هتل داریم و حدود 9 تا هتل خیلی در واقع 호텔 آقامان تا مجموعه های بزرگ صنعتی رو در حال ساخت دارید این اتفاقی بزرگی است به پهنه حدود هزار هکتاری رو به عنوان پهنه گردشگری مطالعه کردیم امروز هم خوشبختانه تا با شورای مجموعه در واقع یکی از هلدینگ دریایی گاز تعارف کردیم که بخش جزائر سازی و بحث تقیان دریایی رو پیش ببریم و همینطور پایین دستی های فولاد و سکترا شیمی رو برنامه‌ریزی کردیم که اینها بیان تا پایین تا بتونیم اینها رو هم محاسبه کنیم بحث جلب مشارکت جوامع محلی باز موضوع بوده که خیلی نیاز بوده که ما بحث پیش بوه طراحی تعلیمات تاب از این قهرمانات من برگزار براه حتی تا همین شب بحث هنوزم هم همچنان نادرتا این نباه وجود داره ولی خیلی کم رنگ شده گاردین هست که مردم نسبت به اون دارن تو ما و تو از عدد شاطی می‌دارن که چیزی به ما نمی‌ادش مسئله آیدی برای ما نداره ما اومدیم یک مطالعهی رو با معصه مطالعه اجتماعی دانشت به تیتران انجام دادیم با آگه یکی بکنیم خود چی بکنیم خروجی مطالعه یک سند مسئولیت اجتماعی شد برای ما که ما در سه تا حوزه آموزش بهداشت و تمام نستازی و توسعه مشابه خانگی سالیانه در برنامه‌های های خودمون تکلیفی کار بکنیم ما تقریبا الان حدود 200 تا مدرسه رو شروع کردیم 145 200 تا کلاس درس رو 1450 تا کلاس درس تحویل دادیم تا ارسال 150 تا در حال ساخت داریم این اولین باری که تو منطقه آزاد در اتفاق افتو دورترین نقاط بلوچستان دشت یاری کناره از رزروا و بادرس قرار حالا رفتیم توی مناطق همین اخیرا هم 200 کلاس درس حدود ده کلاس درس سال و چهرپنجایتش بکیم کنم تحمیل شده سال و بیستاش شده بقیه در حال ساختن مهر امسال تحمیل دید دارم استفاده میکنم تعالیقا چند تا زنی چند مسئولی مهاقش شده دیستا تحمیل شده آره اتفاقا اینها اثراتش از اینا در واقع روغن همون ها چهتنده های توسه هسته و خیلی خیلی نگاه مردان مرتبه و رو نسبت به مسئولیت‌های منطقه آزاد و برنامه‌های توسعه‌ای که دوباره داره داره. داره در دنبال می‌کنه تاکید داریم یعنی در این کاری که ما انجام می‌دیم اوجی مصداقی است که مطالریس گزارش گرفته شده. صنایع دستی و سوزندوزی دیگه ما تقریبا برایش سنگ تمام گذاشتیم یعنی بیشتر از میراست فرهنگی ما تو حوزه منتوری کار کردیم و الان رندهایی رو دادیم ولی طناقو اوسانا که اینقدر تنهاش وایب نمی‌رن ولی شرکت می‌کنن در بحث توسعه کسب و کارشون ما که تکیید زنجیرهشون تو بخت بازاریا و فروششون خیلی برامون برنامه‌گذاری برنامه‌های مفصلی رو گذاشتیم و تازه خیلی خوبی, رو خوبی رو انجام دادن روستای کی سیدیتون تنها روستای منطقه آزاد بود که تمام دادها و فریادها علی منطقه آزاد از این حساب برن میشه چون در 25 سال گذشته هیچ وقت تکیید این روستا معلول نشد یه روزی گفتم مال سرزمین اصلیه، ما چه استان داری با جواب بره یه روزی هم گفتم نمط من تغذیه دیم و این بعد اخو منطقه آزادم چی خواهی من تغذیه چی کاری من رو استان رو کردم دیگریم؟ این ازیب نرفت که کرد کرده استان زمین استم گفتم خرج داره ولیش کم مال من تغذیه ده. این به به جیب یه سری کار رفت که یه روزی ما متوجه شدیم که اردوستان یه سرده چهل و هکتاری دیگه شده نزدیک هکتار زمین وای توانی که دم خودم و قرایع دیگه. یه ورود خیلی جدی کردیم ما توی این روستا و الان بعد از 40 سال بعد از انقلاب یه روستا در داخل منطقه آزاد انسان ما بهش 30 سال گذشته هستن و شروع کردیم سال سر سر این طوفان انسان کامل میشه 100 درصد میشه. یعنی آب هم نداشته این روستا. بحث مدارچشون رو بحث بیلاششون الانای مرکز جامعه سلامت در حال ساخت داریم. دو تا مدرسه در حال ساخت داریم اونجایی که در تامون میشه و تقریبا مسئله از جا. بحث مالکیت عراضی مردم رو در یه مقالبی براش کردیم الان یه اسکلی سیادی قدی میترین اسکل سیادی منطقه اسکلی تیست هست که همان بلایی دوگوش کردیم با هم مجنوعی که از هفته آینده شروع میشه و بحث مشاقلشون رو عمومن در واقع چیز هستن سیاد هستن رو پیش بردیم بحث گردشگری رو تو کل محور از, چا... از کنارک تا چاوهار برایشون یه سری برناه داریم حالا اشارت بر بحین و بازی من خدمتشون گذارشون بحث انتقال دانش و تکنولوژی های دکتر موضوع مهمی این همه سنعت و که کمیخای بیفته یه انتظار جدی که از من انتظار وجود داره بحث انتقال دانش و تکنولوژی هست یه دانشگاه داشتیم این دانشگاه رو و اونسایت رو تبدیل کردیم به منطقه ویژه م فناورییداری تمام باامام میدیوست جمهوری هران پردی سپ های فناوری مستق هست یک مرکز رشد داریم و یک کارخانه نوآوری داریم میزنیم که یک مایه مع ما معنده آماد است چیزی ود فکر می کنمم میفلش در تا هست اون الان مستقل شده یه شقاب دهنده در حال مذاکره داریم تو بحث طراح صنعتی که یکی از ظرفییتهایی خیلی خوب سر صادرات کشور هست در حال راه انددازی داریم فالیتهایی هم با چینیا شروع کرده بودیم که حالا تو این فضای مقداری متوقف شده و خدمت شما عرض کنم که درگیرستان ممون هم, هم توی همین مجموعه است ولی اون هم ماجرایی است که بر ماهی داستان شبانه روزین است سال قبل شده کردیم آزمون از فقط از رو ها از هر روزایی دو تا سه بود شهرهای اراافشااواد اما ما هزینه آشم ساز ما هم شهرتر بود از هر دانش آموز ده میلون تومن هست در رو برد. رو سازمان می‌پرد بزن. راجبه این دویرستان فقط میگم دوره اولی که ما از سال آخریا ها در واقع جزد کردیم یک دانش آموزی هست، در سرنایی دریایی می‌خونه در دانش آموز سرنایی شریک خودش به من گفت، اگر من نگرده تو توی دویرستان توی این مجموعه من قرار بود که دیپلم گرفتم با دایین برم از سرگیه کاری گرفت. و یا از سیزده تا روز تا تا بچه که میتونه سرشت های کاشناسی فنی منسی قبول بشن فقط فرهنگیان زدن باعث ما 7 8 تاشون یه کار بلند مدت اساسی است که در واقع تمدید انسانی رو داره انجام میده و به نظر من به هر حال جز کارهای ماندگاری هست که ما طالبش بی‌توجه بودیم و علنا تو همون قالب و در همون سند داره کارش انجام قامولات بین المللیمون بر اساس اون, اون تصیری که ارش کردیم و بازارهایی که پیش بینی کرده بودیم ما هم با پاکستان هم با عمان هم با افغانستان مجموعی از کارها رو شروع کرده بودیم توافقاتی رو انجام داده بودیم شهرکایی رو براتون پیش بینی کرده بودیم پروژه سنگ و مواد معدنی برای افغانستان تو بحث مواد غذایی با خدمت شما از اونها پاکستانی پروژه شیلات ما با ها و ها به توافقات خیلی خوبی رسیدیم یه دونه پرورش ماهی در پس زدم مشترکن با یه در واقع سندگزاری ایرانی بحث توصیح راودتون با گوادر از طریق ریمدان رو دوبار کردیم وحسای هوای لوجستیکی و توضیحی رو با کشورهای آسیای میانه الان قیدزستان داریم این اتفاهم را میباشون به بخش قضا قصد عزباکستان رو سایی میکنن یه منطقه آزادی دارم اونجا به نام ناوایی و الان مدتیست در حال مزاکریم قراری که اونها یک یاردی رو اونجا در اختیاره ما بذارم یه یک بیارد تونها اینجا یه مبادلاتی رو با همدیگه شروع بکنیم اونها اتفاقات خوبی تو این سالها تو کشور آسیا میان و افتادایی ما ازشون وافلیم ولی توی ده سال گذشته همهشون رشد بالا چار در سر رو تجربه کردن و کارای خیلی خیلی بزرگی در حال انجام هست اینها الان با همین داره. اونجا اتفاقون افته در آن نزدیک حجم و معادلاتشون به شدت افزایش بدا می کنم. و به دنبال راه برای رسیدن برای, برای آقای آزاد و شرکای تجاریشون هستن که روی چابه حساب بیشه باز کردن و میشه با اینها کارهای خیلی بزرگی رو دنبال کرد. هم رای هم جاده دیگران یعنی از سرخص از سرخص خیلی مایتی بزرگی سیستمی که باید بزرگی سیستیمی سرخصه. زاهدان سرقصه، زاهدان چابهار ما میشه بکی سراسری بس میشه ولی برای رسیدن به سرقص باید بریم من که من از اون مسیر دوباره برگردیم بریم اونجا یه تیکه مهمه این پازر کوریدور شرق زاهدان به سرقص هست با مجموع مختلفی مذاکره شده یه مخته یه آسان خیلی دنبال بود این رو کار بکنه زمانه رئیسی ولی بعدا متوقف شد دیگه ادام رو پیدا نکرد ولی این اصلا قاضل اون کوریدر جنوب به شما رو وحثایی که ما با آسیاه داریم رو بدون تردیل کامل میکنه و بسیار مهمه راجب مذیعت ها و مزایای های آزاد که هیچی ازش نمونده رو کاغذ شما همه رو میدونه دیگتر همه رو یه جورایی گرفته رو بحث سنانیم حالا من توی لابولای مباحث اشاره کردم راجب پروژه ها اگر بخوایم صحبت بکنیم و برای اساس اون طرح قبلی 14 هکتار حدود نه تا پیکره داشتیم که هر کدوم از این پیکره ها در واقع کاربری های اونشون تعریف شده و یه سری اتفاقات در داخلشون افتادی کنم ولی بر اینکه مدیریت زمان بکنیم از این ها عبور می کنم میریم بحث پروژه عمرانی کجاست آقایت؟ بذار آمار رو و با هم بخونیم اول این قسمتش مهمتره بذارم. زمان را دست نتیم. آیدی ما از سال 95 یه توافر با خودمون و همکارانمون کردیم. ارکم استراتژی ما تغییر مسیر از تجارت به تولیده. و یک مسیری رو برای خودمون تعریف کردیم که واحد های تولیدیمون رو حمایت بکنیم، تشویق بکنیم از او بر تجارت رو هم نادیده نگیریم، اما مشابقه هم رو همه رو بذاریم برای تولید ملاحظه می فهمید که ما در سال 98 595 میلیارد تومن ارزش تولیداتمون بوده سال 96-560 میلیارد بود توی این سال 97 افت شدیدی شد تا دوباره واحد های تولیدی پیدا کردن رشد رو شروع کردن امسال متأسفانه دوباره با این نمه ساند و شبه درستادی پیدا کردیم و بیشتر مقررات من متقدم نخود تولید کار رو خیلی برشون سخت کرد ما امسال فقط با یه تعریفی برنجی که از 25 درصد آوردن به 10 درصد 20 تا واحد اون یه درخواه شد برشون نمی سرده که تولید بکنن جون متاسفانه مانسل نبوده. هفت همه مقررات سرزمین اصلی برند آغازات آگهی سختی سفارش نمی‌دونم آغازات. همه همه هر وقت مامو فقط از منطقه آغازات می‌شود. باید برای بررسی به سرزمین اصلی کامل میگیرن برای اکسپورت نه، برای برای صادرات سرزمین اصلی چرا؟ صادرات سرزمین اصلی رو کامل میگیرن زمین که ماجرا ثبت سفارش ارزی که در واقع پیش اومده تقریبا همه واحدهای مبادله ما, ما یا باید برای تولید کنن برای خارج یا در منطقه چیز تولید کنن که یه سرش خارجه و یا مثلا کالایی که همه منابعش و مواد اولیه داخلیه مثلا تکنولوژی اش داخلیه همشش داخلیه اصلا نداره تو منطقه آزاد تولید بشن. تولید در منطقه آزاد علاوه بر مشکل زمین و اینا موافقت مالیات و اینا خیلی ناچیزه کم اهمیته اون چیزی که اونها رو جذاب میکنه و پایدارشون میکنه اینه که یه بخششون بسته به بیرون یا مواد علیه یا ساده یا مواد از اینجوری دارن تولید میکنن برای سرزمین نسلی یا از سرزمین نسلی اصلی دارن تولید میکنن ساده میکنن اینه که سند پایدار رو در مناطق شهر میده و خب با این شرایط ارزی و بحث صد به سفارش و تخصیص ارز و باساناتی که بر حال این روزها همه این کشور رو گرفتار کرده اینجا رو هم بیشتر آسیب زده به که ما بیشتر وابسته به دلار بودیم و آبرا بیشتر مبادلتمون دور دارید. با همه این اتفاقاتی که تو این سالها افتاده و بهنامه هایی که بر در حوزه هم سیاست ما داشتیم و هم در حوزه انگیزه هایی که به لحاظ تکمیل زیر ساخت ها تو منطقه انجام شده که سرمایه گذاری محقق شده ما یه رشد خیلی ای رو گرفتیممر ملاحظه میکنیم که ما سال 93 اون چیزی که روی خا نشست میلیارد تومن بوده. در حالی که سال 98 این عدد به 1267 و تومان رسیده. ا و مجموعه پروژه‌ای که به لحاظ مبلغ و به, به لحاظ خدمت شما عرض بکنم که تعداد قراردادها ما در سه سال گذشته وابسته از مجموعه ده سال قبل از اون بیشتره. یعنی در حوزه تولید و در حوزه گذاری اقبال خیلی خوبی در این سال ها انجام شد. دلیل اصلیش هم نگاتی است که و به سرمه گذارا منتقل شده اتفاقاتی که زیر و پسته ها داریم ها و زیر ساخته که داره کامل میشه سرمه گذارا ببین ما تو این عدد پتروشیمی و نیستن پتروشیمی و رو ما جدا داریم میبینیم اما ما الان مثلا توی مجموعه یه کوچیک و متوسط این اتفاقات رو داریم بگیم مثلا ما الان یه واحد پروفیل داریم که در واقع قبلا برایش رو کامل از چین می آ بر تولید می کرد هم به پاکستان افغانستان میداد هم به این داخل بازار محلی میداد اان در از طولات مبارکه میگیره ولی دو ششیپ داره کار میکنه. چیز ورود چه تا مجموعه دیلاستیکی خیلی بزرگ داریم که مثلا سرماگذار شما بالا سی۴ یا آارتمن هستند یه مجموعه تولید اسپانبان اهران داریم میزنیم که ماشمهلاتش کامل وارد شده سواشداری تو همینی نوسانت پوله. ببین ما اشتباه هم یا مثلا تور ماهی گیری داریم تو حوزه، خدمت شما ارز بکنم این اسپنبانه تقریبا بزرگترین واحدی خواهد بود که توی چند ماه های درم ماشینالاتش کامل اومده و سی ست و نفر و منتظر سولش سولش هم توی این فولات سازنده سوله مقداری باشون بعد اهدی کرد وگرمه الان آماده نصب سوله است و بنابرای برنامه باید مثلا توی شهری برای این سال به برداری مرسید باش اونارو باید صدام همین بگم رو بگم چون من قرار بود خیلی خلاصش بکنم. حالا حافظ میشد خدمات شماشت توی تو مات تمرکز خیلی خاصی رو برای تکمیل مطالعات و توسعه زیر ساختمون انجام دادیم. به لحاظ عملیات و عمرانی کارهای توسعه مثلا سایتهای صنعتی، مسکولی یعنی می دونم بر و آب و زیستاختهایی که بالاخره نیاز منطقه هست ما آمارمون رو 75 تا 85، 85 تا 95, و 95 رو بعد مقایسه می کنیم اعدادش رو اگر بیارید این حوز عمران باز کنیم هفتهاد و تا هشتاد و کل ترهای تفسیری که هزار هکتار انجام شده هزار هکتار رو بروید و از اون هزار و هکتار تر آماده سازی تهیه شده و هشتد و هکتار فالت آماده سازی انجام شده سال هشتاد و 95 نونده پنج یعنی دهه دوم فقط 68 هکتار آماده سازی انجام شده نه متعالی انجام شده نه تنگه تری انجام شده و ما توی این 95 که شروع کردیم 9600 هکتار از 14000 هکتار رو تر تفسیری و تر جامعه منطقه رو بازنگری کردیم تر تفسیری و 9600 هکتار تنگه کردیم تر آماده سازی 1600 هکتار و الان 520 هکتار آماده سازی گورد 200 و خوده 300 هکتار سرمتی مبقش مسکنی و در واقع شهریه داریم انجام میدیم به لحاظ عمل کردی اون جدره بعدی رو بیارید از سال 90 تا 95 66 میلیارد تومن کار امرانی تومن داره انجام شده ما الان 975 میلیارد تومن در سال 99 قرارداد جاری داریم که البته 150 ملیار بینگر ازاد رو کنیم فاز دوی فروتگارو 1400 میلیارد تومن محلن کار امرانی تومن داره در سال گذشته که در ما سال 95 یعنی 96 کارهای مورده قبلی که باز بود رو جمع کردیم به اون انجام دادیم 97 مطالعاتمون کامل شد از 98 کارهایمونی شروع کردیم تو 98 647 میلیار تومن کار کردیم امسال 970 میلیار تومن الان تقریبا تنها جایی که الان کار عمرانی فعال توی منطقه انجام میشه منهای راه هم توی منطقه آزاد هست این ا 975 کش قرارداد داریم الان تقریبا حدود 35 40 درصد این میفته سال بعد ما این سال 790 میلیارد تومان وجوه بردیم سال 95 وجوه 100 میلیارد تومان امسال کرد 590 میلیارد پارس از هست که داریم انجام میدیم بحث ورزشگاه کریکت ما تا اولین ورزشگاه کریکت استاندارد ایران رو داریم می‌سازیم به که اینکه کریکت ورزش رو به توسعه خیلی خوبی است در دنیا و تیم ملی کریکت ایران از 14 نفر 13 نفرش اهل چاواره ما اول اولین کریکتیم و مسابقات کلا در بحث ورزش ما متمرکز رو روی این و این ورزشگاهی که داریم میسازیم تبدیل می‌شه یکی از هاب‌های منطقه‌ای برای دباو توریسم ورزشی. بحث مرکز جامعه سلامتی هست که داریم کار می‌کنیم. آموزشگاه ورزشی مخصوص منتسب بحث هست. بحث 13 تا مدرسه مجموع راه های که الان کار می‌شه. مجموعه پکره‌های راه‌های ارتباطی پل و این قرار انجام می‌شه. مجموعه گردشگری انبار سرشیده هست. شبکه وردو مجتمع آموزشی که در دانشگاه داریم انجام میریم بحث کست های بردامون هست تصیح و فازله ها بیست که انجام میشه و سری پارا پروژه های گردشگری دیگه مهمترین این پروژه ها هست در حوزه مسئولیت اجتماعی که عرض کردن ما در حوزه های مختلف بهداشت و درمان بیمارستان 540 تختخوابی که تقریبا قرار هست به به 600 سال نفر آدن این جمعه بوستان سرمیس بدر و زمینش رو رایگان ما در اختیار وزارت بیتاش گذاشتیم که در شروع کرده داریم استازه بحث خدمت شما ارز بکنم آسیب های اجتماعی رو توی این حوزه خیلی جدی داریم دوبار میکنیم ما یه موبایل در واقع باشکاموس و برای مارن ایجاد کردیم که نیا مراجعه کنند این ها برن سر آقشون. و این اداره شایبی خب معمولاً نمیذارن مراجعه نمیخوان به مراکزی مرکز. یه مرکزی رو با این سیستم‌ها ایجاد داریم یه ریپورتال سیستم با همه امکاناتی که مورد از این واسه اینها میره تو رابط این جوابشون رو حسابشون می‌کنن داروهاشون رو می‌دن سفارششون میدن، می‌دن اورژانسی که لازم مراغیتا گلاسنده‌ها رو انجام می‌دن تو بحث توی دو سه منطقه که سفره خارجی زیاده من خودش که کار دارن هر رو یا فهماره مثل داریم در فهمارش در کشور هم بحث دیگه ها بیمارستان مرکز آیسیوی بیمارستان مومنی رو تجریز کردیم دوستانی در مدیعه های خریدیم داری بجری... در واقع همین بیمارستان توی تا... نحیام قروم تقریدن... ها تطریقا بحث خدمت شمارسیونی مرکز امارایی رو دستگاه ماشه پولی شما دادیم بزرکه اتشت بینیم پزشکی کلون بزیش که خرید آورده بخش کورونایی رو ما در بیمارستان تجیز کردیم که همین ایامی کرونا ما اضامات خیلی خوبی کردیم ما تقریبا اولین منطقه بودیم در کشور که چار دیرستان وازارا می تردید کردیم و در تمام اون ایامی که پیک اول بود ما تمام منطقه بودیم که سکی بودیم در کل کشور. و اون نجات سیستان و روچستان شده این ما اگر بازارانو تحتیل نمیکردیم چون همه این مسافرها به محصد شاب و و از اون وقت وارد میشدن تا اینجا کل این مسیر رو آلوده میکردن. اینجا میرسیبن خسادت خیلی زیادی به خسادت مکنی که تختیز به بحرانشان تو بوجودش ولی انساخان همکاری کردن به اتفاعت پروفتاد تو بحث آه تو بحث مسائل در هرچیکی مسایل و مهم مردم هستن کمک خوبی رو در این موزه انجام دادیم بحث‌های آموزشی فرنگی وث کردند در بحث تولیدات فرهنگی، ما فیلمهایی که در ونیچستانست و ونیچستان کار ب شده و سه تا منفهوم خشونت مواد مخدر و فرق توش رو اول حمایت می کنیم شان هرچی فیلم از اوول انتلااب ساختن اگر باشا داشتن لباس واسه بوده اگر فرق بوده برچ نشون دادن اگر خشونت قرار بود خوشوشو خوش‌بودن با سن مردمونشون در تصویری که سینما از مردم این منطقه در ذهن خیلی از هم‌وطنان ما ایجاد کرده این اصلا نش از خیانت سینما به یاد می‌کنه تو این دو سه سال تقریباً 5 6 تا فیلم خارج از این فضا ساخته شده و ما در اون از همشون حمایت کردیم در بحث تولیدات فرهنگی کتاب و مسائل اینجوری هم حدود 20 تا کتاب رو حمایت کردیم که بعضیش اسناد تاریخی است که برای اولین بار داره از 1860 تا مثلا به اوایل 1900 کاری از این دست رو انجام دادیم با محیط زیست توافقات و تعاملات خیلی خوبی داشتیم برای اولین بار مطالعاترسیه منطقه را انجام دادیم من توافق سازان اکولوژی رو داریم در تفاهم با محیط زیست انجام دید که در دره خیلی جدی مردم بعد از بحث پترشیمیتون اهمیت به دولت اینها خیلی به ما کمک کرد مسائل اجتماعی و مدارس و خانه‌های فرهنگی روستایی به انصار نشاط اجتماعی رو توانات اینها رو همراه سعی کردیم که دنبال بکنیم حجود تقریبا ده درصد غیل از خمرانی یعنی مدارس و مجموعه مدارس و ساختستاز همون توی من نیست خیلی مجموعه فرهنگی که حالا بحث حمایت های اجتماعی نگیم برد بگیم ما ده درصدمون از بوجه همون همیشه رایلت بکنیم در حوزه فرهنگ اجتماعی هزی بشن خدمت شما هستم بعضی از تولیدات رو اگر آقای فیلم نشون بدی داره این فیلم رو بزرد تا این شهرک صنعتی ماست یه نموداری رو از سال ۸۴ مادرها بردیم نها بلاد شما که منطقه کرده در خیلیدن اینکه دوتا عکس آخرش رو نداریم کنه را یک پرد هست که هیش اتفاقی نمیدفته توی مجموعه تو سال ۸۹۹ نور مجموعه هایی که ایجاد میش از سال ۹۴ که این سیاست هایی در بور معمولیتی ما شروع شده که یه رفتش یک شهرک در و الان شهرکی همچه بشه میگوردن شهرک شهرک شهر زندگی شده که الان همه خدمات مهمونی شهری رو الان متوازی هستند یا این مجبوره بربار کارهای که انجام شده تا سال ۹۷۶، ۹۷۶، بیشتر شده من تا برای چون بگیر فضای تحرمی دوباره من گوگل اکس هاشون نگیزه بخیرن نتونستیم این اون اکس های گفتیم خودمون اکس نگیریم که میگن آقا خودشافه قدیم از گوگل بگیریم که واقعی باشیم مجموعه فولاد و بگیران این سال گذشته یک گیری پیدای کرده اختلافی به نسان با پیدا آموش به مشابت شد. حالی هم دوله این سال رومتش میکردیم، را رو اخدادم و همه بار فرشت پروی مجموعه بجوشینه این برده هست که این تجزاتش تجزات اصطلاحاً برجامی مویش در آخرین روزی که اختوافقان رو برد هم بردگشت دونجا پردو مجموعه یکی بخش لایسنس تجزات در باقی چیز هست این شهرک سنتی الان. مجموعی فلوهادی ارز کردن به روکتروفیلی که داره تولید میشه به داره دو شکس مجموعه مجموع فراغلی برنج بود هست که کار بسیار مناسبی هست همسرفت جوی ارزی داره و هم بحث اشتغال خیلی داره ایجاد میکنه مجموعه پلاستیکی منتصر نیشه. نابکارانوی هست که از پخشی میکنن و میکرند مجموعه تعمیر دو موارد پلاستیکی. میشه با سه درصدش در وساده نیشه. از دستگاه هاشون هست. مرازیم باید. طرفافی مجوزشیلاب کاره خیلی خوبیم. تو مجموعه طرفافی منطقه. ای دوتو ما هر مجموعه که در منطقه تولید شروع شد، واردات اون محصول رو به منطقه ترسش دوباره کردیم. برای کسب طولی ما کنیم یا مجموع در داره در که در صنعتی در تولید میشه وارداتش رو حتی بعضی رو بیشتر از دو بنابرای کردیم برای اینکه در صفحه خصالی باشه هم به شما بدهیم نگاه کولیو برزشگاه های دهکده برزشی مونه این اولین زمین استاندارده بگیری که دهکده یکی باید خواهد انجام میشه فقط اینجا بگونه انجام میشه دهکده یکی کرده یک روکرده توریزم زنباق ورزشی شکل گرفته ما شیش ماه سال با بهترین جا برای کمپ های برزشی هستیم به این مجموعه رو با در این مجموعه نقامتی با حامل در رو پیشمینی کردیم که همه ورزشی رو کمپ خصوصاً با تمنبول به ورزشنای و آبی و البته در این ورزشنا میشه. کم سازمان هست که یکی هم موزرها تحصیل سازمانی بوده امتن رو بوده که این فرصت بلنه کردن برای سازمان ساختمون بسرازم ما ساختمون هم و همکار همون دوی سال نمر و پنش دوی 23 ساختمون تخش بودن. به یه ساختمون رو اجاره رو، پیشوی کاوا در با چیز ساخته میشه خود این پروژه مرک توسعه شده دستسط به بیا که هیچ کس دیفت ساختمون و رو شروع کرد برنا بدتر بلند در رسشه مجموعه فرزگی یهخوا برگی ساخته شده که دست و روزی هم که گفتن گفتن که این 6 شما وقت سر بگمان کردیم. داریم در این قداره منطقه روزه ایتونها کردیم. اگر این جمع شما. مجموعه هست که کار در, هر در, در که در میشه. ساران فروژگاه فیلی رو سال کامل واسطیزی کردیم. واقعا کم اصلی اونجا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 بزرده کاش بگیرن در حدیبا فوجه در بیمارستان کامل این محمد دردگی بگیره و حکومت بخش مفوصی به مزاکرات را انجام دهدی با یک دو تا نجمه آماده بیده و یک فانانسی که در خواهر تعمیل و مالی بکنی و بیمارستان بگی سسید به مجموع دوتری رو که این منابش کامل است. در طبقه شروع کرده در وقت ساخت هستیم آمونه در چیز و شروع که چیز می دوییم خدمت شما ارز کنم که سعی کردم خیلی خلاصه یه دوری دوی کل منطقه بزنید هم دوست داریم که سوالات و نظرات و شما رو بشنوید هم اگر که برقا نظرات رو دید بایدارید آن چی که آیدوید تو مخوام به عنوان تا آخر خودم بزنم اینه که مناطق آزاد یک ظرفیت قانونی بینظیری بودن که ما به دلیل این که نتونستیم درست نظارت بکنیم هر دفعه اومدیم با هر خطایی که صورت گرفته بخشی از صورت مسئله رو پاک کردیم و اون ظرفیت قانون رو اونقدر محدود محدود کردیم که تقریبا دیگه از اون که Ongoing و از این وضعیت دینازیر کردن در ابتدا در واقع تعریف شده بود هیچی چیز نانده سی سال هست که رئیس هیئت مدیرهش یک نفر آقای و روزی که اونجا رو عنوان جبل معرفی کردن حدود سیزده میلیارد دلار در فاز اولش 7 میلیارد دلار فاز دوم سیزده میلیارد دلار دولت امارات تجهیز کرد و بعد اونجا رو گفتن آغاز عمامت آزاد شابه ها رو یک بره کاغذ دادن دست یک نفر بوندان و میرامر منطق 100 میلیون پول بهش قرض دادن یه کانکس دادن تا حالا برو واردات کن بیا اینجا رو بساز و بعد حالا مثلا زیرساخت برای هم اون بعد تولید رو بگیرید ما محاسبه کردیم سال نه یعنی با این متراژ مفصل امور رو انجام دادیم یه برآوردی کردیم که اگر با همون فرما زیرساخت های منطقه رو محاسبه کامل بکنیم چیزی حدود 60 سال دیگه باید این مسیر ایدام توی 25 سال ای زیر ساخته منطقه ترانم شده با برنامه بود 304 درسته اصلا اون 4 دنی زاده 31 در این سال حال اتفاقات بزرگی افتاد. یکی از این اتفاقات نظارت پذیر شدن بود. یعنی ما الان اولا بوجه همون ای هست که میشه توی به بودجه میاد توی دلار تصفیر میشه مجامعی که هیچ وقت برگزار نیم شد. ما الان مجاممون هر سال داره برگزار میشه سازمان بازرسی تقریبا همیشه در واقع منروز محتمایی که هم اجازه بدهید ما جای برش بزنیم ما باشه دیگه هم حضور داشته باشه کمک ما بکنه دیوار محاسبات الان وجود داره بسیاری از مقررات اون اختیاراتی که در هر حال در لواز در اختیار مدیران دهنا ترتیب شده به بحث و دستور همان. و به لحاظ سازمانی و ساختاری الان شکل مناسبی گرفته که هم قابل تریس کردنه هم معمولیت محور شدن و هم کارشون رو از الان میتونن توی مسیر درست ببرن اما متاسفانه دقیقا در جایی که ما برگشتیم سر ریل اصلیمون و میخواییم مسیرمون رو طیبو کنیم همه یادشون اومده که آمنتا غاز دادن جای خوبی برای زدن دولت ها فرقی نمیمونه که اون دولت باشه هر کار هستاس ترین و اقتصادی ترین بنگاه ما رو و مرکز توصیه کشور الان شده کانون مسائل سیاسی که متاسفانه آسیبش به اقتصادی کشور داره میرسه و حدود یک قانون چند صفحهی هفتش ده صفحهی جبلالی داره که در تمام این سالها یک بخشنامه اضافه نشده بشید. ما قانون ده صفحه‌ای دارید که الان تبدیل شده به یک کتاب شیش صفحه‌ای. صفحهی آید من سال لارجانی اومدن جواب احسان هم راهی راهی واخت بودن یه خواهش باشه من جناب اون خواهشو می‌کنم یک بار بیاین بخونیم قوانین و مقررات مربوط به آزادی رو بخونیم و چیزی اضافه نکنیم اضافه ها و متناسبا رو پیش کنیم ما گرفتار مقررات متناسب و مکرری که اینها بیچاره کرده حرکت رو در سطح کلام مناطق آزاد رو به بده با شرایط خیلی بدتری هر کجا که نتونستیم تصمیم درست بگیریم نظارت خوب بکنین یه برشنمه دادین یهقان نیست معرات بحصل کردیم دوباره مقررات یا مقرلات امروز سازمان امور مالیاتی بر هر شرط اقتصا شرات سختی مین و پول بیاریکنه بیاری، نف نیست پول بیاری اول اوملا سرا منقازار این بدترین آسیب به منتقازار که امروز ح مرات مالیتی شراز بکنیم چون همه سرماگذار های کوملا با این مقرات اومدن ما مادارن توسعه میدن افزایش میدن زمانشون مادری کم میکنیم اینکه کنترل بکنیم ما با فرا رو مالیاتی نباشه اینکه رصد بکنیم نه همش خیلی خوبه یعنی نه این مالیات بگیم الان دنیای حالا فردا خواهند گفت برای تشخیص اینجوری تو هم امسات تو وضعیت دیپولویی گرفتاری بوده سازمان امور مالیاتی صادق کرده ولی من طرف والی منته واسه یه بحرانی رو دربار ساختن ما ماجرا کنترل های میخونن جا بدن بحث صد سفارش آید تور 4 تا ویژگی مهمه انتقاض داشت یعنی که قانون کارشون بوده که ما معل بزنیم تاوش یکی قانون گمروک بوده که هران با استقرار گمروک در برودی من اتا خازات اینم نقص شده. یکی قانون در واقع کار گمروک مالیات که الان توی خانون خانون بوده که هران با انترین مسئله و مناغش هستم تو مجرس هم دولت و قانون آخرش قانون فریب بوده که هیچوقت حتی شکل نگرد. ما سال 94، 95، 96 اینقدر استقرار کردیم با ما خود دوتا مجعبز آفشوربانک بما که اگر اون آفشوربانک هاست، تو ب هر بار اول گفتن 15 میلیون دلار تا ما رفتیم رسیدیم دیگه‌را گفتن 80 میلیون دلار دپوزیت باید بزنید رفتیم روسیه کردش پنجا رو 50 رفتیم کوب اونارو هم رفتن کدیگا رو 50 کوب کردنش 150 تا خوردیم به تقریبا یک تونه اشرباک اونم 13 هش کردیم از معاملات ایجاد بکنیم که اگر اینها رو داشتیم امروز شرایط ما که بحثای مالی و ترانزکشنالمون این, این گرفتاریای مسائل نبود. و شماستکن از این چهار تا ویژگی مهم مناط لازار الان تقریبا میکنم که جرت بگن چ من تاببرده. یا باید بیاین توی سطقانگذار ای در حاکمیت واقعا تصمیم بگیریم این مناط بازار رو تاببراشون برداری مردم مع به زندگیتون برسید. یا اگر همه دو جای دنیا از این درست استفاده کردن و ما الان آسیب هامون رو میدونیم از کجاها آسیب دیدیم به موناسیب ها رو اصلاح بکنیم و از این ضرفیت که واقعا کار بزرگی انجام شده و مقایسه هم بکنیم به نسبت انتقادات خیلی جدی بشواره پس همه اقداماتش هم کم نبوده اینها رو بیایم در واقع در یه سامانی در یه یک آرامش و امنیت مقرراتی یه بزرگی تولید کننده اومده بود بازی درختی برای میدان کی بودی که اصلا این مقامات سال گذشته وقتی اونجا گفتن که خدمت شما ارز کنم که خواستاتون از ما چی؟ وزیر اقتصاد بود. از شما ی همین حامین‌های خیلی بد رو رطفاً بنویسید تا 5 سال بهش دست نمیزنید ما خود رو با همین‌ها به‌کنیدیم در سال ۹۷ ۱۹ ساعت آقای دکتور یک بخشنامه صادر شده در برور جمهوری اسلامی که مقرات منطق آزاد محس کرده اون وقت می‌گن آقا منطق آزاد چی پاید کردن؟ نه، نه، بعد باید سخت سفارش انجام کشه گمرخ مستقرد بشه و بخش میدادن در روزی خدمتی خدمت از این آقایی گفتم تا ما این مصاببات دولت رو که دارم میمیسن این تا یکی عوض کنیم گفتم برای چی گفتم این یه فرمی داره هر مصاببه شما میمیسید و من حتی قاضا دارم تحجیزات رو میکنم هر چیزی که در اون سای مصابب کردن و من حتی قاضا دارم بعد میگم خب ما با از مناطقی که ازادمون مثلا چیزی میخوان من قبول دارم خیلی از مسائل و موضوعات خیلی از محدودیتایی که باید انجام شده توقعاتی که وجود داشته به معنای واقعیش شون که مونده انجام ندادیم، من راجع به اولین بحث دارم. این شد اولی تا مونترین افرادی که در مناطقه زربزرگ وارد بوده، کاملو خیلی خوبی دادن اما هیچ ابزار کنترلی و مکس برای این نذاشتن. آقا شما دقیقاً چه حرکت یا نه؟ باید آری یا آیا شما نظارت می‌شوید یا نمی‌شوید این وزارتیه این در دوره پولانی ولات باز می‌زده امروز که دارن وزارت می‌شن کمک بکنن قوانین و مقرراتی رو در در تناسب با رقبا و رقباای منطقهمون ببینن تا بش ازشون استفاده رو بهره برسید گرفتم امیدوارم مثلا یک دو ماه روز در چاواها در این نقطه خیلی خوبی رسیدیم و اگر حمایت بشه و اگر که کمک بشه باورم در این هست که چاواها میتونه به عنوان پایتخت دریایی ایران نقش بپذیره و می‌تونه برشانده ای از اقتصاد آسیای می‌دانه و خیلی از کشورهایی که قصد دارم با آسیا میانه بررسند و حتی روسیه رو در چاوارار با به اقتصاد ک میونه ما وییتور امروز اگر دوباره دارن میگن آقا آچ ایران تحریم حال چاوارار به خاطر توافوم بین الملی ما اگر می‌تونستیم در این سالها در تا توافومام بین نرلی روم این تازه تاقومانه چند نیست تحت تا بین اگر داشتیم ده جا حزینه برشون درست می شود و حزینه بر تحلیم کردن ایرانی کار راه کنند. و این ارتباطات و وابستگی ها خواهد از درید هم به نموه ارتباطات دارد می استاد من هستی جنارالی چین وقتی در می من میخوام در هزار دو برسم به قدرت اولی دنیا دو هزار و انجامه رو بزارم برنامه و تر و موضوع بر خودش می اما اعتقالش رو می گه من همه این حرفهایی که دارند میزنن با جدده کردن میخواام بهش برسم. و من این توی اقتصاد دور تو قدر های آینده اقتصاد دنیا هرکس که تسلط به شریان های ارتباطی داشت برنده است و نقش اقتصاد. این تمام دغه رو و نگاه دور رو کرده ما در بحث ها و مطالعات و برنامه ها و ها و طرحهای ماست فکر می کنیم به نقطه خیلی خوبی رسیدیم حمایت مجلس حمایت دولت، حمایت نظام رو که، ویژه هم معذ رهداری بهش وجود داره. اما در اجرا تداخلها، ها دخالت ها بخشیگری ها ما گرفتار کرد رو در این زمین ها کمک میکن ااشواراللا که آنچه که شایسته این مردم و این کشور و این اقتصاد هست از طریق چاوار ما بتون ماهی را بکن ذخواهی میکنم از ستاره کلام دیگه همکاران هم اصلا تعف میکن کسی چیزی نقطه اضافه بکنهثر جنوری و بهطور دوستستان هستند. I'll give them که در شب مولود نبی به روایت برادرانم خدمت شما هستیم و مجددا هم از از اینکه در یکی از نقاط امید اقتصاد ایران تنها بندر رؤیا که می تواند به جهات مختلف یکی از نقاط تنفس ما در شرایط تحریمی باشد خدمت جامعه دست در کاران سازمان منطقه آزاد عرض سلام و خلوات دارم به همه دوستان و باز جهت سوم خوشحالی من از جهت این است که آقای کوردی به حال اختصاد خوندن ما بیشتر زبان مشترک داریم با و فهمیدم که تلاش های چند سال گذشته و آینده باقی دو هاتی باشه برای نامینی که شما و همه دوستانی که در این مدت زحمت میکشند ها منطقه ببیشه که از مسببه بهمن پار شما ایالبارم شدید و در واقع هم خدمت و منفعتتون باید خیلی بیشتر و وسیع برسه به تناسوبش خب زحمت و تلاش بیشتری هم از مجموع شما خواهد برد. واقعیتش اینه که هم مسائلی که تحت عنوان مشکلات زیرساختی منطقه اشاره کردید که خب مناطق اساساً با دست تویی شروع به کار میکنن بدون زیرساختها و ما امروز بعد از 28 سال از تصویب قانونی منطقه آزاد چابهار هنوز می‌بینیم که به پرمالش دوستان تا علی 70 درصد زیرساfta هنوز تکمیل نیست خب این خودش مسئله از اون محورایی است که در ذهن من خیلی خوردنگه و چون بنا داریم که در اسلامیی که کمیسیون اقتصادی مجلس بر قانون چگونگی اداره منطقه آزاد بناس الحاق بکنه یا اصلاح بکنه حداقل حد این تجارب پرهزینه گذشته رو تکرار نکنیم خب خیلی نکته در صاموزی است مساله مقررات متکسر و متعارض که خب البته بلیه فراگیری برای همه اقتصاد ایران است اما خب ما انتظار می‌داشتیم که حداقل در مناطق آزاد که ماده 5 فکر کنم قانون شماست که میگه فقط مقررات همین قانون مثلا خواهد شد و در اینجا کمتر با این مشکلات و مواجه باشیم یا مسائلی که در مورد وحثای گمروکی یا تنمینادی رو اینها فرمودید خب سرفست های خیلی است میشه مفصل در مورد اینها گفتگو کرد نظرات دوستان رو بشنویم و دستاورد خوبی از این پوزیت داشته باشیم اما اجازه میخوام که به همین مختصر بنات بکنم اگر آقای رویدی معافق باشند حالت اینکه شد آیدی تویانی را شنیدیم ما یه جلسی دوبومی با هم داشته باشیم بعد از بازدیدها اگر دوستان موافق باشند هفته کاری رو با اون جلسه آغاز کنیم شما ما دوباره باید حوالی ساعت ده مرخص بشیم اول صبح شنبه مجدد جمع دوستان برواقه یک مدجای سازمان منطقه تشکل داشته باشن و حالا هم مشاهداتی که ما در طول این مدت در منطقه انجام دادیم و همون نکاتی که سوستان شاید شاید فرصت نشد فهم روی شد پیرو داشتن اونجا به تفصیل جمع رو منخول بکنیم به اون دیگار پایانی رو. خیلی ممنون و متشکر سماییت بسم الله حالی آره. مطمئنم خیلی ممنون متشکرم دوست داشتم واقعا از منزر دوستان استفاده کنیم و مطالبش رو بشنیم ولی بیرامون محترم جور حمل رو آقا اسفانی هم نترکیم آره یه رو کشیدم اتفای یا فعال هم من به که کنم خدمت شما که واقعیت واقعیت یکی از مسائل جدی که الان در کشور ما وجود داره اینی که ما استاد نسب نیمه اجرا کردن به تحوال و عملا اون اثری که باید اون تحق داشته باشه رو از دست میره. مناطق آزاد هم یکی از اون هاست، حالا چه بیشتر حرف رو بیذاریم شما تو جلسی جنبالی ارز میکنیم. واقعیت اونی که اینقدر قوانی و مقررات در سرزمین اصلی پیچیده است دست و پاگیره که تقاظا برای مناطق آزاد و بیشه به شدت در مجلس بالاست. اونمونش هم اون مسببات آخر مجلس دهم که اعاده شده است عملا دست ما در کنسیون اقتصادی مونده و اگر با همین دست فرمون پیش بریم تا چند سال دیگه عملا دیگه چیزی تحت ما سرزنبینه اصلی واقع نیمونه همش یا ملاطق آزاد یا ویژه تبدیل میشه درست هایی به با همین از حالا و اونم اون چیز را این قرار کنی یه سری عارم، عارم یه چیزایی رو کند کشفرهاد رو برم یه قرار دست بکنم تسردیدن رو کنی کشفر هم چون تسردیدی، من برموم همه شدیدی که من در و شاید اصلا uh, یه طرفش هم خب همینه دیگه یعنی وقتی که نمیتونیم اونا رو اجرایی کنیم میرم این برشان رو خراب کنیم یعنی uh, و شاید توی سی سال تجربه‌ای که پیدا کردیم برای این اصلاح ق مناطق آزاد بتونه بعد از 30 سال پجره بشن اون موقعی که نوشته شد یا اصلاحات اولین و شده شد این خط امتحان خودشو پس نداده بود علایه حال زرفیت خیلی خوبی همطور که در اصلاحی هم بشورداختی در کشور ما وجود داره این هم با یک پجره تنخصی در مناطق آزاد متوبندوه بشه و خودشو نشون بده به که اینکه اون زیرساخت ها ترمید بشه الان تو گزارش فرمودن که ما هرز بختمه شما حجم زیادی رو حالا من چون سریع گوه شد ننوشتم. ولی ازراهان زمین هم منتقل کنن با این زیرساخت جاده‌ای مفکر نمی کنن با این وضعیت موجود این اتفاق امکانپذیر باشه مگه اینکه زرفیت جاده‌ای توسعه پیدا کنه و واقعا پذیر بشه که این حجم از انتقاد به صورت جا مگه اینکه امیدمون به ریل باشه و با ریل بخوایم این کار بدیم. امیدوارم که بتونیم از طریقمون اسلام مقررات و که گرفتگوشایی کنیم و بخشی از این مشکلات هم شد. خیلی شده بیشتر باشه برای اسفر. خیلی ممنونمون چکه از شما درده شبوتت نه هر رای درستی نه حد مزن آبا هم شونیون روی که زیادی داد شد همین زد نهبن خب من بکنم آید همشت دردیبیشون بخت داریم اگر که افراده که می کنم و شیوه های ترمین مالی مقصنی که همهش همش وارد کنند مثلا همین که اینا باب شده، مد شده همه مثلا با دیگلی خلصه با منطقه آزاد بزنم مخصوصا تو بحث خاچاق کالا و بحث مثلا زنی پروشی واقعا اینا تو تهمت های بسیار بسیار ناروایی با منطقه آزاد. من این برمان کاشناس دارم عرض می کنم دارم می بینم اون چیزی که در پایین دریه من الان متالش نه تو جلسه نمیگم بعدا میگم یه اتفاق افتاد در یه دوره تو هم دولت خود ما اتفاق افتادی دوستیه کاری کرد بعد میخوااست آدرس غلتی بده به رو ببین این ماجرا شد برای ما و همین طور ادامه پیدا کرد. الان من خدمت شما عرض میکنم ما کمترین سهم در رو توی جدول در آمدامون زمین دادیم. یعنی ما زمین پروشی طولی... نده. ما زمین طور به تولیدی همونان زمین تو حق را امتفاع دارید میدیم. نمی اینا همه اصلاحاتی که در این سال ما شده. در یه زمانی بعد زمین رایگان میدادن. همینجا داریم ما زمین رایگان دادیم. ولی الان دیگه زمین رایگان خبر نیست، زمین هم با گذار قطعی هم خبر نیست که طرف بگیره مثلا نسازه و بعد به بیا بیاست بعد بعد که در هر دعای مضطر اسلاقاتی انجام شده که آنه ظرف 6 ماه شما دست به زمین نزدی قرارداد خود به خود باطل بیجام می مخاطب راجع بود و یا واحدهای تولیدی تا زمانی که نساختن هیچ قطعه روی زمین ندارن یعنی میخوام بگم یه اتفاقاتی از این که میگم اتفاقات زیادی افتاده از این دسته و ما الان کمترین سهم وای میکولای چه نیست کلر و که بگه کمترین سهم رو ما درصد س... درآمدمون بحث زمین داره یا مثلا واردات کردند الله کردن که, که روی برای شب شده. ما مثلا سال 96 کل واردات منطقه آزاد 190 میلیون دلار بوده. کل کالایی تو منطقه آزاد اومده. شده حدود 25 میلیون دلار و عددا، عدداییه که دیگه در واقع نمیشه خیلی روشنسته. در همون روزهایی که گفتن آقا مثلا درست درصد از واردات منطقه آزاد قاچه و کالا از طریق منطقه آزاد هست سرجم کالایی که وارد منطقه آزاد شده که ثبت شده بوده دیگه. مبادی رسمی محمده دیگه. ما یه, یه دروازه ورود بیشتر نداریم همش کلی هر هفته منطقه با هم شیستر میکن دولار بود و چوری میگهتنی اینقدر میدیار دولار مثلا قاچه و از منطقه آزاد شده یه آیتم اون کالایی سهم کالای تجاری که ما میگیریم که سرجم اونم نو شیستد و بیس پنج یا زیر میلیون دلار هر هفته منطقه با هم کالایی که توی منطقه وارد شده بود سرجمش این بود یه سه میلیار دلار ها هر سال سه میلیارد دلار سهم کالای تجاری کالای تجاری ما این می و نقطه شجاست این آمارو ترجمه میگه ما دو تا کالا داریم توی من یه کالایی میاد توی منطقه تو بازارهای ما وارد میشه یا تو انباره ما دبوم میشه و یه اتفاقاتی براش میفته که ممکنه قاچاق میشه یعنی تا وقتی تو منطقه است قاچاق نیست وقتی از گیت منطقه خارج میشه میشه قاچاق یه کالای دیگه توی منطقه میاد فقط در گمرک ما ثبت میشه و ما از سود بازرگانی اون کالا 15 درصد رو حکومت داریم اسلامی کس کسر میکنه میگه این منطقه آزاده ما از اون 15 درصد 3 درصد 4 درصد دو درصد و برمان به عنوان مشعث به ساقرا و اگر بقیه رو خودمون میگیریم این کالا همونجوری پلم شده از, بر... از دالان منطقه آزاد باعث سرزمین اصلی میشه سهم پیش بینی شده برای هر هفته منطقه در سال در بودجه سه میلیارد دلاره که این کالا اصلا در منطقه آزاد باز نمیشه و اسناد مثبت درآمدی بودجه ماست این این رو میارن میگن این عدد تو منطقه آزاد وارد شده اصلا تو منطقه آزاد مثلا الان من فردا شما نشون میدم کجا میاد دفوم میشه از کدوم گیت خارج میشه حتی قبل از اینکه ما 14 هزار افتارवटी بودیم حتی در داخل منطقه نمیومد گیت خروجی گمرک که از بندر کلانتری اومد برای کالا ازش خارج چون خارج از منطقه بود. البته من شبو توقی کالا حتی تو مندوز چاوارم هم نگید چطور ممکن آقا چابار یه کالای دیگه هست که به عنوان کالای مصرف در منطقه کالای مواد اولیه و اونام اون کالای مصرف در منطقه که جداگانه باز کد میشه و هم به این سامانه و سیستم ما اروپا دسترسی داره و هم دستگاه نظارتی هر وقت بخوام میتونن بیان اون کنترل بکنن اون سال 96 600 میلیون دلار بوده سال چاوار اون سال که میلیون دلار بوده ما بالاترین و سال ۹۸ این عدد درمان شده چقدر آقایی آزر فیران؟ ۹۸ ۳۴ ۳۴ میلیار امسال به 20 میلیارد همینید نرسیده به میلیون میلیون ببخشید ۳۴ میلیون دلار بود سال ۹۸ و امسال 92 همینید به ۲۰ میلیون دولار نرسیده هم بگم این ابحامیه که دوستان متاسفانه خیلی با یه ظرافت میگن آقای باهادات متقاضی بله وقتی کالای تجاری که ما از دری رو مطرح میشه ما درآمد میگیریم با کالایی که منطقه میاد رو با هم جنب بزنید میاد ارزش و بحث زمین هم که عرض کردم حالا اینا رو با فردا و بشه فردا خدمت جناب علی داودی هستیم و صحبتو میکنیم مجموعه دوستانی که اینجا حضور در نمایندگی فرگوس همه مدیران این هستن که به لحاظ تعهد، به لحاظ توانندی و به لحاظ شناخت نیست در موضوعات به جورت میتونم بگم کسایی هستن که مرتبازات رو درک کردن و مسائلش رو هم خوب میتونن و همه ما هم هر در هر شرایطی این در واقع تعهد و عرض رو به ساختار رو به اقتصاد کشورمون داریم. بنابراین خدمت جنابالی برمان آخرین رو ترز که فکر کنید یک تیم مشابره تخصوصی باعث مهربانان حتما همین هستن اما در چابهار از بنده عنوان کارشناس و کمترینش تا همه همکاران من برای هر تصمیم و گذاری که در مجلس بخواید برای من ابراز انجام بدید تمام کمال در اختیار شما این منهای پوزیشن منتباضادیمونا به عنوان کسی که علاقمند به این موضوعات هستیم و معتقدیم که این باید حل بشه برای حفظ کردنش کار باید انجام بدید تا جایی که میتونیم باعث شفافش بکدیم و تا جایی که میتونیم معمولیت محورش بکنیم که این معمولیت محوره قابل تریس کردن، کودینگ باشه من باید پایان سال به من بگم کردی تو قرار بودی از ای برسی به مثلا ده کلیم جابری هشت ها رفتیم دوتا رو چرا نرفتی؟ برای راه های نرفته سوال کنیم های ما, ما امروز مدیران ما فقط برای راه های رفته دارن جواب دیدن هیچ کس هنوز برای راه نرفته جواب ن حالا اجراش دیگه فعلا بگید اینا ما ماهایی که کار کردیم و بگید فعلا بذارید برای, برای کار کردن دوستی داشتیم این هم عنوان مزاه بگم و تمومش بکنیم و که رفتم داشتیم داد, داد, داد چیزی این داد سرای ویژه کارکنان دولت بعد خودایی که با من صحبت میکرم اون من بودم کلی کار کردم بودم دا فریاد که این چه بساطیه درست کردید و من این کار کردم، من این کار کردم، من این بنده خدا خیلی آدم رو خیلی خوشمشته بودید. خیلی مثبانی بوده آقا. از تو تابلا رو بخوندید. چی نیمشت دا اینجور بودی؟ نیمشت دادگاهی بیجه دولت. نیمشت دادگاهی بیجه کار نکنان دولت. ما هر کسی کار کنه میریم توسی این جنش. کسی کار نکنه ما بهش کار نمیریم. آقا برکت